حکایت یکی از فضلا تعلیم ملکزاده همیداد و ضرب بی و زجر بی قیاس کردی. باری پسر پس از بیت طاقتی شکایت پیش پدر برد و جامعه از تن دردمند برداشت. پدر را دل به هم برآمد. استاد را بخواند و گفت پسران آهاد رعیت را چندین جفا و توبیخ روانه میداری که فرزند مرا. سبب چیست؟ گفت سبب آن که سخن اندیشیده باید گفتن و حرکت پسندیده کردن همه خلق را علل عموم و پادشاهان را علل خصوص. به موجب آن که بر دست و زبان ایشان، هر چه رفته شود هر آغنه به افواه بگویند و قول و فعل عوام و ناس را چندان اعتباری نباشد اگر صد ناپسند آید ز درویش رفیقانش یکی از صد ندانند و اگر یک بذر گوید پادشاهی از اقلیمی به اقلیمی رسانند پس واجب آمد معلم پادشهزاده را در تهذیب اخلاق خداوند زادگان انبتر همولا و, و, و نباتن حسلا اجتحاد از آن بیش کردن که در حق عبام. هر که در خردیش ادب نکنند در بزرگی فلا هزو برخواست. چوب تر را چنان که خواهی پیچ نشود خوش جز به آتش راست ملک را حسن تدبیر فقیه و تغریر جواب او موافق رأی آمد خلعت و نعمت بخشید و پایه منصب بلند گردانید